واقعیت حقیقی امشب مطابق معمول اهل تبت روی صندلی همیشگی نشست و شروع به سخن گفتن کرد زبازار تارس این را به تو میگویم که یکی از عالی ترین راه های پی بردن و به تحقق رساندن قدرتی که درون تو نهفته است قدرتی که فراسوی ابعاد زمان و مکان است بردن به زندگی های پیشین و تجربه کس این قدرت ها تا رسیدن به این نقطه از راه خداست چونان چه طالب حکمت حقیقی باشی باید کشش این طلب میتواند تو را بیقرار سازد پنها خیشه خداوندی تو که درون روح الهی جای دارد میتواند عشقی را که نیازداری بر تو ایثار کند با با عشق خود از برای خدا موانع ذهن که تا به حال موجب انتقاد تو از دیگران تعدید کردنها و لغزشهای کلامی تو میشدند شدند تو می دیگر از ریشخند دیگران نمی حراسی. آنگاه دیگران هم پنهانی ناسزا بر تو روانه می کنند. احساس می از کفایت لازم برخورداری چون در حال تحقق رسالت خود در زمین هستی به زودی قادر خواهی شد روح را از بند ذهن آگاه رها کرده به اراده خود به فراسوی زمان و فضا بروید و به حکمت حیات کل عالم در حضور خدا دست یابی. میدانی که دانش نهایتی ندارد و خود را از مجرای تمامی روح‌هایی که در زمین زیستند و همانان که حتی از زیستند در زمین به حیات خود ادامه میدهند و هم آنانی که در آینده در زمین خواهند زیست به قجل میرساند. این در جایگاه رو تمامی قماش ماده در اختیار توست تمامی آنچه که ما انصر یا جوهر جسم می نامیم محکوم به محدودیت مکان است و آگاهی از مکان فقط در ذهن خداگاه وجود دارد لذا روح فارغ از ذهن خداگاه در بند این گونه محدودیت ها به سر نمی برد. قماشی که ما ماده می نامیم در حقیقت حیوسته و توپر نیست برعکس چیزی نیست مگر فضای خالی و انرژی. اینک چون روح به دیدگاهی فراسوی ادراک اشیا در چارچوب شکل و زمان دست می چگونگی که کل حیات در کل زمان بربه آشکار می شود گذشته هنوز هست آینده همکنون اینجاست با علم به این نکته حقیقتی ارقانی فاش می شود که می گوید تمامی آنچه روح در عالم معنوی طلب کند همینک در تعلق توست زیرا که هر آنچه نیاز نیازداری همکنون برایت وجود دارد پس همه آرزوهای معنوی تو هماکنون برایت محیا شدند لذا تا هنگامی که خود را در اصارت محدودیت های ذهن آگاهت نگاه داری چیزی فراسوی این محدودیت‌ها به دست نخواهی آورد. زمان حقیقی جاویدان است و هر آنچه تا حال بوده و خواهد بود همکنون در تمامی لحظات حاضر است روح هیچ نیازی به تلاش بیامان برای گستردن عرصه آگاهی خود ندارد روح هرگز مجبور نیست برای شکوفا کردن خواستهایش تغلا کند هر آنچه در عالم معنوی مورد نیاز باشد هم اکنون در روح تعبیه شده است خیال واقعیت حقیقی است نه آن خیالی که آدم فانی می‌شناسد بلکه خیال حقیقی در عالم معنوی این خیال بادرانفتن ذهن خود به نوری صارف من و اندیشه بر محور حضور من محقق می شود به من به عنوان عشق بیاندیش. آنگاه خیالت را با احساس ملاتفت مهربانی و شادمانی به کار گیر هیچ تصوری از آن چه کوشش دارم بگویم داری؟ پس از این دیدگاه نظاره کن بیدار شدن دانش در درون یک فرد امری است. و در مثل مانند بیدار شدن نیروی است که در یک تخم بلوط نهفته. بلغوه ای که درخت پرشکوهی را در شکوفایی خود وعده می دهد. این راز اکتساب مدارج معنوی در آگاهی از قدرت معنوی نهفته است. اگر از حقیقت اعمال نیک آگاهی پس در حال کوشش در راستای واقعیت خداوندی هستی با پرورش خیال درون ذهن می شود به این وضعیت رسید که همواره نظر به نیکی داشت به اندیشیدن به من ادامه بده من استاد تو کسی که در تمامی شرایط اعم از معنوی یا غیر معنوی می تواند از تو حفاظت کند استعداد معنوی مهیبی داری و قادری به آسانی و با آمادگی کامل آن را به کار گیری این هدیه ای از خداست که به تو ارزانی شده دیگر اینکه تو قادری ذهنت را به سرعت از ارتعاشات عشق آکنده سازی آری تو صاحب قابلیتی هستی که برای انجام کار من در طبقه خاکی قابل استفاده است. به زودی باز خواهم گشت شب بخیر